خب بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الحجر والحجر هو منع المالك من التصرف في ماله حفظا له حجر تعريفش مكنه منع كردن المالك از تصرف در مالش نمتونه مالشو بفروشه بيكي ديگه ببخشه اطابو کنه اینو ميگن حجر ممنوع التصرف در مال خودش حجر من ای مالک از تصرف در مالش حفظاً لهو تا مالش چی بشه؟ محفوظ بشه ولی این محفوظ شدن مال به دو جهت یک مال برای خودش محفوظ بشه دو مال برای دیگران محفوظ بشه یعنی به دو سبب میاند حجرش میکنند تا اینکه مال برای خودش محفوظ بشه تا اینکه مال برای دیگران ذربه نبیناد و قد يكون من وجهین میگه این حفظ یا این حاجر از دو وجه برش میاد احدوها احدهما همه یکی از اون ليحفظ ليحفظ ليحفظ دو سبب لیحفظ علیه مالهو اینجا مال مالو فتحه داده تو این کتاب تو كتابش ماشي؟ اگر این فتحه درست باشه تا حفظ کند برو مالش رو اون موقع فائل کی میشه میتونیم بگیم اونی که حجر کرده تا حفظ کنه بر اون مالش رو می توانیم بگیم حذر تا این منموع التصرف حفظ کنه بر اون مالش رو اگر مال داشته باشه؟ فتحه و اگر نه می مجبورش بکنیم بگیم لیوحفظه علیه مالو تا محفوظ بشه برش مالش این چیزی یک من یاد از لحاظ اعراب و الثانی لیوحفظه علا غیره تا مال غیرش محفوظ بشه این برای افراد دیگر اینجا در حالت دوم غیر از اینه که مال دیگران ضربه نمیدند مال برای برای دیگران محفوظ بشه فان کان الحجر لیحفظ عليه ماله یا لیحفظ عليه ماله فقد يكون من ثلاثه اوجه اگر حجر بر شخص تا مال برای خودش محفوظ بشه این به سه یا سه شکل یا سه سببه حد ها یکیشون به خاطر کوچک بودن شخصه که هیجر برش میاد و ی حجار رو على لقله فماللی حجر میشه شخص شخص کوچک شخص سغیر درمالش به خاطر قلت ضبطش. آقا اقلش کم است. فاذا اوبل غشیدن وقتی که بالغ شد در حالی که رشد داشت رشد هست، و در جمله معترضی آورده و رشدو از صلاحو فی الدین و اصلاح فی المال صلاح در دین و اصلاح در مال اش میگن رشد میگه فا اذا بلغ رشیدن جمله اعتراضی رو حس میکنیم دو فی امالهو الهی بعد اختبار رشدهی وقتی که بالغ شد در حالی که رشد داشت داده میشه مالش به خودش بعد از البته سنجیدن و آزمایش کردن این که آیا رشد اقلی داره یا نادری. و بلغ صالحان فی دینی غیر مصلح لمالیه، او مصلح لمالیه غیر صالح فی دینی، فحجره باق ما بقیه على حالیه. اگر بالغ شد در هالک صالح در دینش بود، اما مصلح نبود درمالش. یا مصلح بود درمالش ولی صالح در دینش نبود. چه در دینش مشکل داشت، چه در مالش فحجرهو باقی این حجرش باقیست حق ممنوع تصرف بودنش در مالش باقیست ما بقیه علا حاله تا زمانی که برون حالتش باقی باشه پس سبب اول حجرش سغیر بودنه، سغره، کوچک بودنه والثاني الثاني الجنون دومين اللات جنون دیوانگي است فيحجروا على المجنون المجنون محجور میشه ممنوع التصرف میشه وهو في معنى الحجر على الصغير و در معنى حجر مثل صغيري حتا يفق رشيداً تا این بهوش بياد در هل كه رشد داشته باشه من منظور از دیوانگي بدار بياد بله اگر تنان این محجور نشه حاجر نشه ممنوع تصرف نشه یک موبایلی رو که مثلا خریده فرزن خودش که خریدن بلد نبوده مال که گیرش اومده خب میاد این مالش رو مفتکی تباه میکنه؟ و ثالث از صفح سال سومین سبب حاجر است. هست کم عقلی رو میگن فرق میکنه با دیوانگی و هو المال اما به تبذیر و اما به قلت زبد میگه صفح تباه کردن مال است یا با فضول خرجی و ویل یا به این که عقلش کم است زبدش کم است در این مورد نظریه امامانوفی رو آورده امامانوفی رحمت الله علیه میگه حجر میشه اگر بالغ شد و عقل داشت که خب حجر نمیشه مگر اینکه که مفسد در مالش بشه اگر مفسد بود مالش بشت داده میشه تا 25 سال شد بعد از 25 سالی مالش بشت داده میشه به انسان سفیه ولو اینکه مفسده در دا مالش باشه این نظریه ابو حالیفه نومان هست که باقیه میگن نه تا زمانی که رشد درش مشاهده نشده حجره و الثانی الجنون اللت دوم دو وم خب صفحه سوم ولا يقاو الحجر عليه إلا بحكم الحاكم هارك السينميتون عز راه بيات براسوين حجرش بكونه ميجا حجر برشواقي نمشي ما ما درب حكم حاكمه فيمنعوا بعد الحكم بالسفيهه من جميع تصرفه ميجا ممنومشة بعد زينك حكم السفيهش صادر شو حاكم أز جميع تصرفاتش ولا يصح منه والصحيح نس سفيه ممنوع التصرف شده است الا الطلاق و الخلع جز طلاق و خلعه فا عاده الى حال الردی زمانی که برگشت به حالت رد یعنی منظور به حالتی که خوب شد حکم به رشدی، حکم داده میشه که این دیگر رشد داره چه داره؟ وبجواز تسرفه وجائز زبودان تسرفاتيش وفكاك حجره وأزبرداشتاني ومحجريش فإن كان الحجر عليه بس إن زماني بدك حاجر بخاطرين بدك مال برا حفظ بشي وإن كان الحجر عليه اللي يحفظ ماله على غيره يلي يحفظ ماله على غيره فقد يستحق من أربعة أوجه زمانی که حجر بر شخص اومد تا مال برای دیگران محفوظ بشه مستحق این حجر میشه از چار جهت از چار وجه یا به چار سبب احدها الفلس یکیشون مفلس شدنشه شکست خوردگیشه در شکست مالی منظوره و هو ان یقل مال و رجل ان دیونی فلس اینه که مالش از دیونش کمتر بشه و بر دیگران دیگران برش دارند بیشترند از این مالی که داره فلا اعتراضه للحاكم عليه ما لم یسأل او الحجر علیه اعترازی نداره حاکم تا زمانی که اون طلبکارها طلب نکرده باشند از حاکم حجر بر این شخص رو طلبکارها به اومدن حاکم گفتن اقا حجرش کن آقا مال ما داره ضایع میشه اینجا دیگه فا سألوه او احده هم حجر عليه زمانی که طلب کارها طلب کردند حاکم رو یا یکی از اونا طلب کرد حاکم حجر عليه في ماله هی دون بده بدنه اینجاست که شخص حجر در مال میشه نبدنش این طلاق میتونه بدا کارای بدنی ولی مال حق تصرف در مال بله. و کانه پس حجر در مالش میشه نه در اون اموری که مرتبط به بدن هستن و کانه مردود تصرفی حتی یقسیمه الحاکمه علا غرمائه و مردود التصرف میشه در مال تا زمانی که حاکم بیاد مالش رو تقسیم کنه بر اون طلبکارها بلحس طبقه سهمیه و حسشون طبق طلبکاری که دارن نه طبقه تعدادشون مثلا طرف مالش هست سه هزار سه نفر ازش طلبکارند ولی یکی بیشتر طلبکار یکی کمتر اینجا اینجوری نیست که این مال باقی مانده شد به شکل مساوی بین هر ستت چی کار کنه نه بلکه طبقه درصد طلبکاری بشون با تقسیم میشه اونی که بیشتر طلبکاری بیشتر بهش داده میشه طبق حسش الا فیشه این مگر در دو جا یعنی در دو جا طبق حساس به طلبکارا داده نمیشه این استثناء همینه که در دو مسئله داستان متفاوته اینجوری نیست که کل طلبکارا رو طبق حصه بدان نا در این دو جا افرادی اولاترند یک احدوها الرهن فیكون مرتحینه حق به حتی یستوفی دینه من ثمنه در بحث الرهن مرتهن. اونی که رهن گرفته از راهن راهن که الان دیگه طلبکار هست الان حجر شده برش اینجا مرتهن حق دارتره تا بیاد بوسیله همین رهن اون از ثمن همین رهن اون دینش رو کامل بکنه اینجا مرتحن حق داره اونی که رهنو گرفته دیگه اینجوری نیست که رهنو برگردونن، بیاد بعدن بین همه چی کارش کنن تقسیمش کنن اینجوری نیست والثانی ما بتاعه من الاعیان اذا لم یوفی ثمنه حالت دوم اینه که اون چیزای رو که شخص خریده اذا لم یوفی ثمنه زمانی که ثمن اون چیز رو که هم خریده نداده پولشو نداده فلی باعیهی الرجوع بهی، انشاءه انشاء اذا وجدهو به اینه فروشنده میتونه این جنس رو بر بگردونه اگر خواست اگر جنس به اینهی یافت موبالی رو داده به شخص الان شخصوار شکسته شده موالش به اینهی نزدشه هنوز پولای موبال هم نداده اینجا دیگه میگه این فروشنده موبال اگر خواست به این موبال اولاتر طبقیه یه طلبکار کارها. فین ابا کان فیه و سطل اگر این کار کرد دیگه اینجا مثل بقیه طلب ها میشه فروشنده یعنی فرقی نداره دیگه. اولاتر نیست به این جنس اولاتر به این جنس نیست و ثانی حجر المرز دومین دو سبب که مال بخواد برای دیگران حفظ بشه حجر مرزه شخص مریزه، اونجوری که حق تصرف به نمیشه بیشتر از یک سوم ماله تباه نکنه این بیچاره ورثه چی دارن میگه يستحق الورثه فيما زاد على الثلث من الاطايا والمحابات دون الاقود العادله مستحق میشن ورثه در فراتر از یک سوم مال البته از اطایا و محابات از اون بخشش هایی که شخص بدون منت داره میده دیگرانو در اینا مستحقترن ورسه ها از بقیه فراتر از یک سوم مبار تا یک سوم که میتونه ببخشه اما بیشتر از اون دیگه نمیتونه بلکه مستحقن ورسه ها دیگه از بیشتر از یک سوم محجور میشه چی میشه؟ مگر در عقود عادله خب اگر وامی داشت برگردنش که اینجا دیگه از یک سوم فراتر هم میتونه بشه از همین مالش اونا داده میشند. ولی در عطایا و بخشش ها حجر میشه و ثالث حجر و حجر بردگی یا استحق في سید و مؤثر فی همین اقوده مستحق میشه سیدش در اون که این برده اونو کسب کرده و تأثیری که در عقده هایی که داشته به دست آورده سیدش مستحق تره و محجور میشه که دیگران بده و حجر رده تی چهارون حجر رده هست یستحقه المسلمون لبیت المال مستحق اون که مسلمانان برای بیت المال این دیگه آسان بود یعنی اینجا در این مسئله اینجا در این مسئله کسی که مرتاد شد میگه محجور میشه حجر میشه بر مالش مالشون میرن میدن به مال